به جامعه یهودیان اسپانیا حمله می کند. هنگامی که دستگاه تفتیش عقاید علیه مسیحیان مرتد به حرکت درآمد، حرکت خود علیه دومین گروه از آماج‌های مورد نظر خود، یعنی جامعه یهودیان اسپانیا را آغاز کرد. از نظر حقوقی دستگاه تفتیش عقاید حق نداشت علیه کسانی که خارج از مذهب کاتولیک بودند اقدام کند. یهودیان در حوزه اختیارات قانونی آن قرار نمی گرفتند چون هیچگاه پیرو دینی جز دین موسا نبودند اما ترکمادا تصمیم داشت فردیناند و ایزابلا را متقاعد کند که به نفع دولت است که این سرمنشأ آلودگی را از اسپانیا پاک کند و وحدت ملی را که اسپانیا چنین دیرهنگام در تاریخش به آن دست یافته بود تحکیم بخشد ترکومادا قادر بود برای این باورها دلیل بیاورد. چون در جریان محاکمات تازه مسیحیان مرتد، داستانهایی درباره باره همکاری های تازه مسیحیان و یهودیان برملا شد. هرچند هیچ کدام به اندازهی محکم و قاطع نبود تا شاه و ملکه را علیه یهودیان اسپانیا برانگیزد، اما در سال 1490، یک یهودی تغییر مذهب داده به نام بنیتو گارسیا بهانه لازم را به ترکومادا برای دستیابی به هدفش داد. قضیه گارسیا در بازگشت از یک سفر زیارتی به مرقد سن جیمز در کمپوستلا شب را در مهمانسرایی توقف کرد. هنگامی که در خواب بود، اوباش خرجینهایش را زیر و رو کردند. و در میان وسایلش چیزی یافتند که آن را نان مقدس آین اشای ربانی از آن نوع که کشیش در جریان مراسم اشای ربانی تبرک می کند تشخیص دادند. این سوال به وجود آمد که چرا گارسیا به جای آنکه نان را به شیوه معمول در جریان مراسم اشای ربانی بخورد آن را از کمپوست لا همراه خود آورده است؟ گارسیا را به دادگاه تفتیش عقاید کشاندند؟ و او را در معرض آزمایش با آب و خفه کردن با تناب قرار دادند. گارسیا در زیر شکنجه اعتراف کرد که به دین یهودی بازگشته است و پای تازه مسیحیان دیگری را هم به میان کشید که آنها هم به نوبه خود به دادگاه تفتیش عقاید آورده شدند و در زیر شکنجه باز هم پای اده دیگری را به میان کشیدند. در زیر شکنجه شدید، چندین یهودی اعتراف کردند که در جمعه مقدس در شهر لاگواردیا در مرکز اسپانیا پسر بچه چهار ساله ای را به شیوهی که یهودیان عیسی مسیح را به سلیب کشیده بودند، مصلوب کردند. گزارش شد که کودک را واداشته بودند که چندین مایل صلیب را با خود بکشد و پنج هزار و بار او را شلاق زده بودند، و پس از قتل آینی او، یهودیان اقدام به درآوردن قلبش کرده بودند. با آنکه جسدی پیدا نشد و هیچ پدر و مادر حراسانی گزارشی از فرزند شده خود نداد، دادگاه لگاردیا هجده ما به درازا کشید. وقتی اخبار مباحث جنجالی آن برملا شد، محاکمه انتقادهای تند زده یهودی را برانگیخت. چندین یهودی در رابطه با قضیه لاگواردیا به ارتکاب جرایم مختلفی مقصر شناخته شدند و از طرف دادگاه تفتیش عقاید تحویل مقامات محلی کشوری داده شدند تا سوزانده شوند. کودک ناشناخته یا همان قربانی پنداری با نام کریستوبال قدیس اعلام شد و به یادبود او در ناحیه لاگواردیا معبدهایی ساخته شد. مهمترین پیامد محاکمه لاگواردیا این بود که باعث اخراج جمعیت یهودی از اسپانیا شد. بلواهایی که از پی داوری در این قضیه پیش آمد درست شش هفته پس از چشم پوشی اعراب مغربی از گرانادا در جانویه 1492 رخ داد. این بلواها شاه و ملکه را متقاعد کرد که سعادت ملی در گروه خلاص شدن کشور از شر یهودیان است، که اگر باقی می همیشه تازه مسیحیان را به راه‌های های خود می یهودیان اسپانیا سراسیمه نامه های دادخواهی برای پاپ و فردینان و ایزابلا فرستادند. دون اسحاق آبروانل، یک شخصیت برجسته در جامعه یهودیان و مشاور شاه فردینان از شاه و ملکه طلب بخشایش کرد و از طرف همکیشان خود قول داد در صورتی که فرمانی که از یهودیان میخواست اسپانیا را ترک کنند لغو شود مبلغ استثنایی 300 هزار دوکات یا سکه طلای رایج گردآورند. ترکمادا از پیشنهاد آبراوانل با خبر شد و شنید که شاه و ملکه در تصمیم خود دو دل هستند. این بود که با شتاب به کاخ سلطنتی رفت تا با به چالش کشیدن ایمان فرمان روایان آنها را از تغییر تصمیمشان باز دارد و بانک برابر یهودای اسخریوتی سرورش را به سی سکی نقره فروخت. شما میخواهید او را به سی هزار دوکات بفروشید؟ بسیار خوب، او را بگیرید و بفروشید. استدلال آبروانل در برابر نفوز ترکومادا بی سمر بود، فرمان اخراج را هر دو فرمانروا در 31 مارس 1492 امضا کردند به یهودیان اسپانیا فرصت داده شد بین گرویدن به آیین کاتولیک یا تبعید یکی را انتخاب کنند کسانی که حاضر به تغییر دین خود نبودند چهار ماه فرصت داشتند اموال خود را بفروشند کارهای خود را سامان بخشند و آماده ی ترک کشوری شوند که نیاکانشان در آنجا صدها سال در امنیت نسبی زندگی کرده بودند کاتولیکا به این اخراج به مسابه یک فرصت مالی می‌نگریستند و اموال تبعیدیان را به کسری از ارزش آنها می‌خریدند بسیاری از کسانی که از وامدهندگان یهودی پول قرض کرده بودند به راحتی از پرداخت دیون خود شانه خالی کردند در این دوره چهار ماهه دارایی‌های کلانی دست به دست گشت. سپس در دوم اوت 1492، جمعیت یهودی اسپانیا را تهک کردند. برخی به مراکش یا الجزایر گریختند. عده‌ای اسیر دزدان دریایی شدند که در دریای مدیترانه گشت می‌زدند و آنها را به بردگی فروختند. عده‌ای را هم راهزنان به خیال اینکه طلا همراه آنهاست به قتل رساندند. اددهی هم توانستند خود را تا ترکیه برسانند. اددهی کمی هم به اسپانیا بازگشتند و قسل تعمید شدند. براورت در مورد تعداد یهودیانی که اسپانیا را ترک گفتند متفاوت است. برخی این تعداد را تا 800 هزار نفر و برخی تنها 160 هزار نفر ذکر می کنند. فرض عمومی بر این است، که در آن تابستان غمانگیز سال 1492 حدود 400 هزار یهودی اسپانیا را ترک کردند. شاید پنجه هزار نفر غسل تعمید را پذیرفتند. نتیجه نهایی فرمان اخراج این بود که اسپانیا با اخراج یک بخش وفادار از جمعیت خود که طی قرنها در این کشور زندگی کرده بودند، از طبقه متوسط شهری خود به طور جدی کاست و به بخش تجاری خود آسیب بی حد و حسری وارد کرد. فرمان اخراج همچنین گروه تازه ای از تازه مسیحیان را به وجود آورد که صدها سال به آتش تفتیش عقاید دامن زدند. شگفت آنکه صداقت این تازه مسیحیان در تغییر دین خود زیر سوال بود، چون بسیاری برای باقیماندن در اسپانیا غسل تعمید را پذیرفته بودند نام آنها و فرزندگانشان اسناد دادگاه های تفتیش عقاید را در قرن‌های 16 و 17 پر کرده است. تفتیش عقاید اسپانیایی در دنیای جدید دستگاه تفتیش عقاید را نیز در سرتاسر سر امپراتوری اسپانیا که در اوج خود شامل آمریکای مرکزی، مکزیک، بسیاری از جزایر کارائیب و نیمی از آمریکای جنوبی میشد، تأسیس کرد. ادارات تفتیش عقاید اسپانیایی در لیما، مکسیکو سیتی و جاهای دیگر وجود داشت. در دنیای جدید، تفتیش عقاید از روشهای دستگاه تفتیش عقاید در اسپانیا پیروی می کرد. جاسوسان در همه جا در مورد رفتار ساکنان به مأموران تفتیش عقاید گزارش می دادند. آنچه مردم می گفتند، آنچه می و آنچه می پوشیدند می توانست وجوه محکوم کننده اعمال مذهبیشان را آشکار سازد. دستگاه تفتیش عقاید در دنیای جدید تیف گسترده ای از قربانیان را می یافت که زندانهایش را پر کنند و مقامات کشوری را به سوزاندن تازه مسیحیان و مجازات انواع دیگر گناهکاران مشغول نگه میداشت. بسیاری از تازه مسیحیان در قاره آمریکا به ویژه کسانی که به کارهای تجاری مشغول بودند جزئیات پیشینه مذهبی خود را پنهان میکردند زیرا شهروندان اسپانیایی آلوده به خونه یهودی حق مهاجرت به دنیای جدید را نداشتند اما از آنجا که این تازه مسیحیان با بازرگانان در اسپانیا و جاهای دیگر معامله داشتند دستگاه تفتیش عقاید غالبا میتوانست رد فعالیتهای آنها را بگیرد و محل جدید اقامت آنها را پیدا کند، هنگامی که تازه مسیحیان در دنیای جدید شناسایی می بازداشت و در دادگاه های تفتیش عقاید محلی محاکمه می شدن. بسیاری از آنها به دست مقامات کشوری سوزانده می اموالشان را دستگاه تفتیش عقاید مصادره می کرد و بخشی از ثروتشان با کشتی به اسپانیا بازگردانده می شد. معموران تفتیش اقاید در دنیا جدید علیه مسیحیانی نیز که مرتکب اعمالی میشودند که در آن زمان جرم تلقی میشد نظیر توهین به مقدسات، جادوگری یا زندگی مشترک با افراد بومی اقدام میکردند. این جرم آخری زیاد اتفاق میافتاد. زیرا تعداد زنان اسپانیایی که به دنیای جدید مهاجرت میکردند زیاد نبود. اما کلیسا به چنین آمیزشی با افراد بومی با ناخوشنودی شدیدی مینگریست و بسیاری از اسپانیایی‌ها به گناه زندگی مشترک با بومیان از سوی دستگاه تفتیش عقاید تازیانه می‌خوردند. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا ملوانان پروتستان را مجازات می‌کند. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا در دنیای جدید به ویژه در پیگرد و آزار پروتستانها سختگیر بود و همه آنها را بدعتگزار به حساب میآورد. پروتستان هایی که دستگاه تفتیش عقاید با آنها برخورد میکرد، در اصل ملوانان انگلیسی بودند که به دلایل ملیگرایانه و مذهبی از اسپانیایی ها نفرت داشتند و می‌خواستند به لحاظ تجارتی به آنها خسارت وارد کنند و خواهان تصاحب ثروت آنها بودند. این ملوانان رد ناوگان خزائن اسپانیایی را که سالی دو بار مقادیر کلانی طلا و نقره را از دنیای جدید به اسپانیا حمل می‌کردند، می‌گرفتند. مسیر و زمان حرکت ناوگان خزائن سال به سال کمی تغییر می‌کرد. دریانوردان مشهور قرن شانزدهم نظیر سر فرانسیس دریک و سر ولتر رالی، هوش و ذکاوت و هنر دریانوردی خود را در برابر کشتی‌های خزانه دار و کشتیهای جنگی محافظ آنها آزمودند. هر ملوانی که به بخشی از این ثروت اسپانیایی دست می‌یافت و آن را به انگلستان می‌برد، یک قهرمان ملی به حساب می آمد. تعداد اندکی از این ماجراجویان انگلیسی در کار خود موفق شدند اما بسیاری ناکام ماندند و کسانی که اسیر می شدند به عنوان بدعتگزار، محاکمه و به دستور دستگاه تفتیش عقاید در دنیای جدید در چوبه مرگ سوزانده می شدند دستگاه تفتیش عقاید اسپانیایی در پرتغال حکومت اسپانیا بین سالهای 1580 و 1640 حکومت پرتغال را نیز تحت کنترل داشت. در نتیجه ادارات تفتیش عقاید را در لیسبون و چندین شهر دیگر دایر کرد. یهودیان اسپانیایی را نیز که در نتیجه اخراج از اسپانیا در سال 1492 به پرتغال رفته بودند، زیر نظر قرار داد. داستان تفتیش عقاید در پرتغال، محاکمات، مجازاتها، سوزاندنها و مصادره اموال درست مانند اسپانیای سالهای 1580 تا 1640 بود. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیایی از جهت دامنه اقداماتش در اسپانیا، دنیای جدید و پرتغال مهمترین نهاد منحصر به فرد در جامعه اسپانیا شد. که حتی غالبا با اقتدار پادشاه به رقابت و چالش بر می‌خواست. چون این موقعیتی بدین سبب امکان پذیر شد که جانشینان فردیناند یا به امپراتوری بیعلاقه بودند یا به طور فزاینده‌ای کند ذهن و سست عنصر بودند به طوری که دومنیکن‌های قدرتمندی که سوپرما را در مادرید تحت کنترل داشتند به راحتی بر آنها مسلط می‌شدند. در واقع در پایان قرن هفدهم هیچ فرمانی از جانب پادشاه چه دینی و چه غیر دینی قدرت اجرای قانونی نداشت مگر آنکه از سوی مفتش اعظم تنفیذ میشد. این مردان سرانجام اداره امور مالی سلطنتی را نیز در اختیار گرفتند از آنجا که دستگاه تفتیش عقاید در اسپانیا عمدتا مستقل از روم بود شخص مفتش کل سیاست کلیسا و دولت را در تمام سرزمین‌هایی که تحت تسلط اسمی پادشاهان اسپانیا بود، تعیین می‌کرد. این مأموران تفتیش عقاید متوجه بودند که با کنترل اطلاعاتی که معمولا در دسترس بود، می‌توانند دولت را کنترل کنند. ترس از سرایت آیین پروتستان، آنها را واداشت که در سال 1570 تحصیل اسپانیایی‌ها را در دانشگاه‌های خارجی ممنوع سازند به همین ترتیب به خارجیان به ندرت اجازه تحصیل در اسپانیا را می‌دادند و با نظارت بر محتوای هر رشته درسی که ممکن بود مرجعیت انجیل را زیر سؤال برد از جمله پزشکی، علوم طبیعی، فلسفه و علوم انسانی ذهن و فکر اسپانیایی‌ها را تحت کنترل شدید قرار می‌دادند در میانه قرن شانزدهم کلیسا فهرستی از کتاب‌های ممنوعه فراهم آورد. این فهرست ایندکس نامیده می‌شد و دستگاه تفتیش عقاید از چنین فهرستی به منظور کنترل افکار کاتولیکا به وسعت استفاده می‌کرد. هایی را که در بنادر اسپانیا پهلو می‌گرفتند برای کالاهای غیر مجاز، از جمله کتاب‌هایی که دستگاه تفتیش عقاید ورودشان را به کشور مجاز نمی‌شه مرد می مأموران دستگاه تفتیش عقاید برای سفیران کشورهای خارجی که در مادرید اقامت داشتند، پی در پی مزاحمت ایجاد می‌کردند. آنها را از انجام مراسم مذهبی باز می‌داشتند و اغلب در پی مطالب ممنوعه بسته‌های پستیشان را وارسی می‌کردند. نتیجه این سیاست‌ها این بود که دستگاه تفتیش عقاید تا تهاجم سپاهیان فرانسوی در اوایل قرن 19 هم از طریق مرجع عالی به کنترل افکار در اسپانیا میپرداخت. اجرای حکم دادگاه تفتیش عقاید. در حالی که حیات فکری کشور دچار انجماد شده بود، فضای مذهبی کشور شاهد های نمایشی مراسم اجرای حکم دادگاه تفتیش عقاید بود. مراسمی که در آن جرایم بدعتگزاران و مجازات‌های تعیین شده برای آنها رسمن اعلام می‌شد. مراسم اجرای احکام در اسپانیا معمولاً در یک روز جشن بزرگ نظیر تاج‌گذاری یا شاید یک عروسی سلطنتی برگزار می‌شد. زمان و مکان مراسم را از یک ماه پیش اعلام می‌کردند. تدارکات گسترده ای دیده میشد تا جایگاه تماشاچیان و پرچمها و بیرقها به حد کافی تأمین شود و از مهمانان داخلی و خارجی دعوت به عمل آید. در روز اجرای مراسم، تماشاگران برای به دست آوردن جای بهتر زودتر حضور پیدا می‌کردند. جایگاه مخصوصی برای خانواده سلطنتی، سفیران خارجی و دیگر بزرگان در نظر گرفته می شود. معمولاً، جایگاه جداگان برای مأموران تفتیش عقاید و همراهانشان در نظر گرفته میشد که با پرچمهای سبز مخصوصی که در کنار جایگاه آنان به اعتضاز در میآمد مشخص می شود. ترتیبات عادیتری برای تأمین نیاز جمعیت انبوهی که برای دیدن مراسم میآمد در نظر گرفته می شود. نخستین مرحله رژه با لباسهای پرزرق و برق و عصاهای کاغذی بود. غالبا مراسم عمومی و بزرگ آین اشای ربانی برگزار و موعظه‌ای ایراد می‌شد سپس مجازات‌ها اعلام می‌گردید کسانی را که به مرگ محکوم شده بودند به میان جمعی می‌آوردند که سان تن داشتند قباهای بی آستین منقوشی که جهنم را مجسم می‌کردند و گمان می‌رفت مقصد کسانی است که قرار بود در آتش سوزانده شوند خود سان سانبینتو به معنای ناامرزیده است. مراسم اصلی سوزاندن در وسط میدان شهر انجام میشد، تا شاه و همراهانش و همینطور جمعیت گرد آمده در شور و حیجان آن سهیم شوند. این مراسم عمومی و پرزرگ و برق اجازه می داد که هر کسی در آن شرکت و قدرت و اختیار کلیسا را بر جان مردم از نزدیک مشاهده کند. با حذف طبیعی تعداد تازه مسیحیانی که در این مراسم در آتش سوزانده میشدند کاهش یافت در حالی که تعداد دیگر خلافکارانی که مجازات میشدند، به نسبت رو به افسایش گذاشت اسناد دستگاه تفتیش عقاید در مادرید نشان میدهد که بین سالهای 1780 و 1820 از پنج هزار موردی که در دادگاه حاضر شدند تنها شانزده مورد جرائم مرتبط با تازه مسیحیان بود. مراسم اجرای احکام دستگاه تفتیش عقاید کار خود را خوب انجام داده بود. آنها آنچه را که برای اسپانیا خطر نفوذ بیگانه بود حسب کرده و مردم را هم در این کار مشارکت داده بودند. بقایه دستگاه تفتیش عقاید در اسپانیا تا قرن ویستوم برجاماند. با آنکه یهودیان دیگر در اسپانیا زندگی نمیکردند مسئله خلوص نژادی هنوز هم دست از سر یهودیان بر نمی داشت. بر اساس این قانون فرزندگان یهودیان و اعراب مغربی از داشتن مشاغل دولتی محروم بودند. در نیمه قرن شانزدهم دستگاه تفتیش عقاید این سیاست را در همه موارد اعمال میکرد و به امور اجتماعی نظیر ازدواج نیز بست میداد. با آنکه سنت تحقیق در مورد اصل و نسب افراد در سال 1835 رسما لغو شد در ذمیر اسپانیاییها چنان ریشه دوانده بود که سنجه های خلوص نژادی همچنان ادامه پیدا کرد و حکومت ناگزیر شد یک بار دیگر در سال 1865 آن را مردود اعلام کند با وجود این ترس از آلودگی نژادی تا قرن بیستم نیز ادامه پیدا کرد تنها در سال 1992، 500 سال پس از اخراج یهودیان از اسپانیا، شاه خوان کارلوس رسما ای را در مادرید بازگشایی کرد و از فرزندگان یهودیان اخراج شده در قرن 15 هم برای بازگشت به سرزمین نیاکانشان دعوت رسمی به عمل آورد. این تاریخ طولانی تفتیش عقاید اسپانیایی یادآور نیروی ماندگار نابردباری و خشک مغزی است که حتی در شرایط عدم حضور گروهی که این احساسات علیه آنهاست به حیات خود ادامه میدهد. تفتیش عقاید اسپانیایی این رانیز آشکار می سازد که چگونه هدف اصلی که مخالفت با بدعت گذاری بود جای خود را اگر نه در سیاست مدون و اعلام شده به وسفسه گرفتن ثروت بخش بزرگی از جمعیت در درون جامعه اسپانیا داد. تاریخ تفتیش عقاید در دیگر کشورها نیز نشاندهنده تمایل به دست به هدفهایی است که غیر از هدفهایی بود که در ابتدا پاپ اینو سوم مشخص کرده بود